مگووی شایدان را مور دگان آنان پشی خدازین زگان مگونج شایددان را مور دگان آنان بشی خدازین زگان مگان ونج شایدان را دگان آنان بشی خدازین دگان. مگو یت شاهی دون رامور پیشی خدا زندگان زگان مگو یت رامور آنان پیشی خدا زندگان شهیدان رفت ان از بین اموات برای آشقی تا زنده باشن شهیدان رفت ان از بین اموات براهی عاشقی تا زنده باشن از این نباید های دنیا رها گشتن تا پایان باشن از این نباید های دنیا ریها گشتن تا پیند باشن مگو شهیدان رامور دگان آنان پیشی خدا زندگان مگو شهیدان رامور دگان آنان پیشی خدا زندگان شهیدان پر در در Asman ha, z inami, Xodaa kan shahidan pazaran dar asman ha, z inami, Xodaa kan debašan, xusha halishahidan ra darar. زیمستی تا ابد درخنده باشن خوشحالی شهیدان را درش زیمستی تا ابد درخنده باشن مگو ی را مورد آنان پشی خدا زندگان مگویت شهیدان را آنان پیشی خدا زندگان خدا یا نصری خود همراهی ما کن که با وحدت جهان را جان بی بخشیم براهی شهر مردانی دیلاور به دنیا تو حفی ایمان ببخشم خدا یا نصر خود هم را کن که با وحده جهان را جاد ببخشم برای شهر مردانی دیلاون به دنیا تو حفی ای ایمان ببخشه بگوی شهیدان را مردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می میفرماید برای شهید در نزد خداوند هف خصلت است مخفیرت کرده می شود بر شهید در اولین برآمدن قطره خونش و نشان داده می شود جایش را از جنده و ذرو زینت ایمان با او پوشانده می شود و با او داده می شود هفتا دو زن از حور عین و از عذاب قبل محفوظ می باشد و از ترس وحشت روز قیامت در امان می باشد و بر سرش تاجی ویقار مانده می شود که یک یا از او بهتر از از دنیا و مافیه و با او دادم شود حق شفاعت کردنی هفتاد شخص را از خیش وانداند. دگان آنان پسی خدا زندگان دگان مگوید شاهیدان رامور دگان آنان پسی خدا زندگان دگان مگوید شاهیدان رامور دگان نون پیشی خدا زین